حکایت پیرمردی لطیف در بغداد دخترک را به کفش دوزی داد. مردک سنگ دل چنان بگزید لب دختر که خون از او بچکید. بامدادان پدر چنان دیدش. پیش داماد رفت و پرسیدش که فرو مایه این چه دندان است. چند خواهی لبش نه انبان است. به مزاخت نگفتم این گفتار، حضل بگذار و جد از او بردار، خوگ بد در طبیعتی که نشست، ندهد جز به وقت مرگ گزده است.